سحیفه معرفت شرح دعای هفته هم سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه چهار روم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل الله علی نبینا و آله تیبین الطاهرین المعسومین لاسی ما بقیت الله فی و بحث در خصوص در ساموزی از کتاب عظیم القدر صحیفه سجادیه مولایمون امام سجاد علیه السلام بود در این رابطه که چه کنیم زندگی ما زندگی انسانی باشد رفتار و حالات ما رفتاری که هم در کمال و تعالی خودمون پیشورنده باشد و هم در هدایت و رشد دیگران مؤثر باشد خدایی نکرده از اون کسانی نباشیم که شکل زندگی ما به گونه ای باشد هم خودمون ضرر کنیم اون نفع و منفعت حقیقی که از حیات و سرمایه یا عمرمون بناس ببریم نبریم و هم دیگران رو از اون نفع و منفعت باز بداریم دیدیم که امام سجاد علیه السلام در دعای هیفده سحیفه سجادیه در غالب دعا و توسل و مناجات با حضرت حق به این نکته اشاره کردند که اینن این نکته ریشه قرآنی داشت آیات قرآنی رو هم در این زمینه با هم ولو مجمل بحث کردیم که نفس ما حالتی دارد آمادگی و استعدادی دارد که می تواند تاثیر تحصیر وسوسعا و نزقات شیطان قرار بگیرد اگر نفس را در معرض نزقات شیطان قرار دادیم با توضیحاتی که عرض کردم این نفس شیطانی می شود و لذا خود مساعد جمع مسیده یعنی عالت سید وسیله سید شیطان برای به دامنداختن دیگران می شود دو نکته رو در این عبارتی که ارز کردم تقاضا می کنم دقت بیشتری بفرمایید وقتی یک سیاد دامی در اختیار دارد وسیله سید که به کمک اون سید کند در مرحله اول دام وقتی در اختیار سیاد است از خود هیچ اختیار و اراده ای ندارد و جز در جهتی که سیاد می خواهد اثری دیگر نخواهد داشت صیاد میخواهد با این دام ماهی بگیرد دام وسیله ماهیگیری میشود صیاد میخواهد با این دام پرندگان را سید کند خب این دام وسیله سید پرندگان میشود تیریس سیاد میخواهد با این تفنگ و تیر مثلا حیوانی را شکار کند خب این تیر در همان مسیر استفاده میشود امام علیه السلام این توجه را به ما میدهت که توجه داشته باشیم اگر ما خود را در معرض نزغات شیطان قرار دادیم مثل دامی که در اختیار سیاد قرار میگیرد ما هم از مساعدت شیطان، مسیت شیطان آلت فریب و سید شیطان میشویم آیا حیف نیست آیا جدا جای تعصف و تأثر نیست؟ این انسانی که میتواند مسجود ملائکه و شیطان باشد این انسانی که میتواند ارجعی الاربه که راضیتن مرزیه بگردد کاری کند که وسیله سید شیطان شود لذا امام علیه السلام به ما می آموزد در این دعا که بگوییم اللهم انا نعوزو بکه من نزغات شیطان تا اونجا که و قرورهی و مسائده خب قرور شیطان فریب شیطان مساعد شیطان شدند اینا رو در ادامه بحث که در این جلسه میخواییم با هم پی بگیریم برای ما مشخص میکند و اونی که وان یتمع نفسهو فی ازلالنا انتاعتک خدایا به تو پناه میبرم از این که شیطان ان یطمئن نفسه فی ان نفسه نفسه فی در لغت یعنی این مقدار در خودش اطمینان پیدا کنه این قدرت رو در خودش بیابه این امید رو در خودش پیدا کنه که میتواند چیزی که میخواهد حاصل کند یعنی چی یعنی ان نفس نفسو شیطان این طمع رو در خودش ایجاد کنه فی ازلالنا که ما رو گمراه کنه ان از اطاعت تو پس یه نکته اینجا مطرحه اطاعت خدا اطاعت خدا عاملی است که نمیگذارد شیطان در ما نفوذ کند و شیطان مخالف است با اطاعت بنده نسبت به خدا لذا این طمع را پیدا می‌کند وقتی شیطان میخواد در ما نازق کنه شیطان میخواد امانی در ما ایجاد کنه های دروغ به ما میده به نیرنگ می پردازه وسیله سید قرار میده این طمع را در نفس خودش ایجاد میکنه یعنی اینجوری امیدوار میشه این چشم امید رو میدوزه این چشم تمع رو باز میکنه که چی بشه فی ازلال نا طاعتک ما را از اطاعت تو گمراه کنه یه نکته قرآنی در اینجا هست انایت بفرمایی در قرآن کریم داریم وقتی که ابلیس رنده شد از خدا مهلت خواست بعد گفت من بندگان تو رو میفریبم البته جز عباد مخلص را چون در عباد مخلص راه نداره لذا این دعای امام سجاد در واقع اینه خدایا من کمک کن جز اون دسته از عباد بشم که مخلص بشم شیطان همچه امیدی در من پیدا نکنه و نتونه سراغ من بیاد اینجا باید تاعت روی کمی با هم بحث کنیم یکی از درس ها و راههایی که امام سجاد علیه و السلام و سلام در این دعا به ما می آموزد تا از نزع شیطان نجات بیابیم اطاعت حضرت حقه من ابتدا از قرآن کریم در این رابطه اجازه بدید استفاده بکنم سوره بقره، آیه 21 و قرآن می فرماید یا ایوهن الناس او عبدو ربکم اللذی خلقکم و من قبل لان تتقون در این آیه شریفه روی سخن به صورت کلی در این رابطه است که انسان ها توجه پیدا کنند هر کسی که هستن بدانند که اگر می خواهن به مقام تقوا برسند می خواهند قدرت داری پیدا کنند تا این که در های مختلف نلغزن و سرنخورن بعد عبودیت پروردگار رو در پیش بگیرن پس یک درس بعد از بیان چند جلسه از فرمایشات امام سجاد علیه السلام یا دعای امام سجاد امام رسوندن بحثو به اینجا خدایا اللهم اینا خدایا به تو پناه میبرم. از شیطان تا اینجا ان یتمع نفسه فی ازلال نا خدایا به تو پناه میبرم از این که شیطان امید داشته باشه تمع کنه در نفس خودش این تمع رو ایجاد کنه که منو از اطاعت تو گمراه کنه پس اطاعت تو چیزی که شیطان نمیخواد خب قرآن این اطاعت و عبودیت رو چی میگه در آیه 21 سوره بقره به صورت کلی میگه هر انسانی هستی اگر میخواهی لعلکم تتقون به مقام تغوا برسی باید چیکار کنی باید عبودیت از را داشته باشی. خب تقوی از کلمه بقای است یعنی کنترل کردن و خویشتن داری. ما یه جاهایی عوامل لغزش میخواد ما را سر بده. همونطوری که مثلا توی جاده یخبندان الان اتومبیل داره سر میخوره عاملی که میخواد نگهداره ترمزه. هرچه ترمز غویتر باشد در این جاهایی که این اتومبیل میخواد بلغزه سر بخوره از جاده در بره بهتر میتونه کنترل کنه ترمز وجود ما که در های زندگی ما رو کنترل میکنه و نگه میداره به تعبیر قرآن کریم تقواست راه تقوا چیه عبودیت پروردگار باید عبودیت رو قدر بدانیم باید عبودیت رو خیلی مهم بشماریم امیر المؤمنین علیه السلام وقتی داره با خدا مناجات میکنه میگه الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن انتکون علی رب با انتک ما اوحب فجعلنی کما توهب خدایا این افتخار منو بس که عبد توام مطیع تو شدم یعنی عبودیت را یک کلاس تربیتی میدانم که مربیش خداست شاگرد تربیتیش منه بنده خدا نحوه شاگردی هم عبودیت اگر شما یه استاد خیلی خوبی پیدا کردید میگید افتخار میکنم فلانی استاد منه و داره به من میگه اینجوری درس بخون امیر میگه افتخار میکنم عبد خدام او داره منو تربیت میکنه لذا در آیه 21 سوره بقره داره اینو به ما میآموزه یا آیه ناس، انسان عبادت کنید ربتونو عبدالرب بتون بشید الله زی خلاق و الله من قبل کم تتقون در سوره بقره آیه 183. یا ای های الله زین آمنو. کتب علیکم استیام که ما کتب علی الله من قبل کم لال کم تر تگون. در آیه قبلی لال تتقون آخر آیه بود. در آیه دومم لال کم تر آخر آیه است. باشد که به تغوا برسید با تقوا بشید. اولی راه تقوی رو چی معین کرد؟ عبودیت رب عبودیت رب عامه یعنی هر چی خدا میگه به گوچهش در دومی انگوش گذاشته رو یک موضوع معین از عبودیت که روزه است میگه خدا مثلا میخوای عبد خدا باشی؟ یه نشانه عبودیت خدا اینه خدا هر چی میگه عمل کن خدا گفته روزه بگیر کتاب علای کموسیام خب روزه رو بگیر نتیجهش چه میشه؟ لعلكم تتقون پس اگه میخوایی این قدرت رو در خودت ایجاد کنی که وسوسه های شیطان رو از خودت دور کنی اون چه خدا گفته عامل باش یکی از اون چیزهایی که خدا گفته چیه روزه است در سوره انکبود آیه 45 و اقیم السلات. ان الصلاه تنها عن الفحشاء اینجا فرمود اگه میخوایی از فحشا دور بشی از منکر باز بمانی چیزی که تنها نهی میکند باز میدارد تو را از فهشا و منکر اقامه سلات است اقمه سلات یعنی یکی از مسادیق عبودیت که خداوند برای ما معین کرده همونطوری که در آیه قبلی روزه بود در این آیه نماز رو مطرح میکنه به وسیله نماز یک حالتی در خودتون ایجاد کنید که تحت تاثیر شیطان قرار نگیرید که بخواید بلغزید پس میخواهید تحت تاثیر شیطان نباشید یک عبودیت رب دو روزه به یک نمونه سه نماز به یک نمونه سوره معارج آیات 19 تا 24 ان الانسان خلق هلوعا ازم مسه الشر وجزو و اذا مسه الخير منوعا الا المسلين الذين هم على صلاتهم دائمون میگه انسان حریص انسان حرس میزنه انسان ای داره کم انسان میتونه در مقابل مشکلات زود به جزع و فزع بیفته انسان میتونه وقتی خیری بهش رسید مناع بشه این خیرو حاضر نشه به دیگران برسونه یعنی چی یعنی بد اخلاقی حالا اگر بخوایم این های بد رو از بین ببریم میگه الل مگر کسانی که نماز میگذارن گزارند الذین هم علی هم دائمون نه اینکه یه روز میخونه یه روز نمیخونه نه مرتبا متوجه این اقامه صلاتش هست یعنی چی یعنی یکی از راههایی که میتواند انسان رو از این های بد که شیطان دوست داره شیطان میخواد ما حریص باشیم شیطان میخواد ما کم باشیم زود از کوره به در بریم تحمل استادگی در مسیر عرضش رو نداشته باشیم اما راهی که در مقابله با شیطان در این امر هست در این چند آیه برای ما نشون داد اون چیه؟ اون جنبه اطاعت پروردگاره حالا گفته نماز بخون نماز رو بخونیم گفته روزه بگیر روزه رو بگیریم گفته عبد بشید عبد بشیم امام رضا علیه السلام در کتاب ایون اخبار رضا جلد ی صفحه 39 حدیث 39 یک جوابی رو در مقابل سوال بعضیا که پرسیدن سؤال چی بوده از امام علی السلام پرسیدند که برای چی خداوند دستور داده که ما او رو عبادت کنیم فلما تعبدهم برای چی اگر کسی بگه فان قال اگر کسی بگوید فلما تعبدهم چرا خداوند به بندگانش دستور عبادت داده؟ گفته بندگان عبادت کنید. آیه 21 سوره بقره که الان خوندم یا ایوهن ناس او بودو ای بنده ها عبد بشید. ای بند انسان ها گوش کنید. حالا امام علیه السلام چی جواب میده در مقابله؟ میگه اگر کسی یمچو چیزی بشه قیله باید در پاسخش گفته بشه. لَعَلَّا يَكُونُ نَاسِنَ لَذِكْرِهِ باید در جوابش گفته بشه این به خاطر اونه که نکنه یاد خدا رو به فراموشی بسپاره ولا تارکی نه لعدبهی مبادا ادب در پیشگاه خدا فراموشش بشه ولا لاهی نه ان و نحیه نکنه از امر و نحی پروردگار غافل بشه ازاکان فیه سلاح هم و قوام هم برای اینکه صلاحش قوامش پابرجایش در این امر در این نهیه در این بیاد خدا بودنه در این امور رو توجه پیدا کردنه فلوتورکو به غیر تعبدن لطال علیحم و فقصد قلوب فلو فلوتورکو به غیر تعبدن پس اگر مردم بدون پرستش خدا رها بشن بدون این که حالت تعبد دارن رها کرده بشن مدت زیادی بر اونها میگذره که این مدت زیاد چه میشه دلهای اونها قصابت پیدا میکنه وقتی دل قصابت پیدا کرد زمینه انحراف شیطان برای این دل فراهم میشه حالا با این بیان مجددا برگردیم به فرمایش امام سجاد علیه السلام در صحیفه حضرت دارن به ما چی می آموزند اللهم انا نعوذ بك خدایا به تو پناه می بریم. از چی ان یطمع نفسه فی ازلالنا ان طاعتک خدایا به تو پناه می برم از این که شیطان طمع پیدا کند در نفس خودش این روزنه امیدو برای خودش ایجاد کنه که مرا از طاعت تو گمراه بسازه منو از اطاعت تو دور کنه. پس ما اگر میخواهیم نگذاریم شیطان نزغش را در ما ایجاد کند باید متی حضرت حق بشیم به هر نسبتی که تلاش داریم متی باشیم الان وقت نماز با جدیت نمازمونو بخونیم ماه رمضان با جدیت روزمونو بگیریم مستطی شدیم تکلیف حج بر ما آمد با جدیت حجمونو انجام بدیم دین شرعی از نظر مالی به عهدمون اومد با کمال جدیت دین شرعیمونو بپردازیم تکالیف خاص دیگری در زندگی روزمره ما برای ما پیش میاد همونگونه که اگر در بیماری جسمی من این رو تقاضا دارم دقت بیشتری به این عرض من داشته باشید در ابتدای این سلسل مباحث عرض کردم بدن من بیمار باشد آقا زبانم دهانم هنجرم یه مشکلی پیدا کرده میخوام زبانو بگردونم این زبان خوب حرکت نمیکنه. حنجرم تارهای سوتیش مشکلی پیدا کرده میخواد این اسببات رو از خودش ایجاد کنه نمیتونه. لذا کلمات من رسانیست جملات من دقیق معانی رو نمی رسونه. این بیماره باید این بیمار اگه نمیخوام بیمار بشم چه کار باید بکنم؟ به من میگن تغذیه درست باشه ورزش درست باشه توجه به این امور درست باشه. اگر من به این اموری که به من دستور میدن رعایت نکنم آیا سلامتی جسمی در من حاصل خواهد شد؟ خب قطعا نه حالا برم سراغ نفس چه کنم نفسم سالم باشه؟ امام علیه السلام اینجا به من یاد میده میگه تاعت خدا همونطوری که آیات گفت که به عنوان نمونه چند تا رو براتون خوندم حدیث امام رضا همین رو برای من توضیح داد که به عنوان یک نمونه یک حدیث خوندم پس اگر تاعت باعث می شود نفسم قوی شود که شیطان نتواند نزغ کند من باید نسبت به تاعت جدیت بیشتری ببرزم با این جدیت خود را برای اطاعت آماده کنم لذا به این جهتی که به ما گفتن شما حتی در اطاعت خدا به واجبات تنها اکتفا نکنید به مستحباتم بپردازید ببینید باز به این مثال من دقت کنید اگر شخصی میخواد منو وادار کنه به عنوان مثال من به یک استادی به یک معلمی به یک دوستی به انصافی کنم حقی که به گردن من دارد ادا نکنم مثلا فرض کنید حالا من مثال مادی بزنم مثلا من هزار تومان به این دوست بده کارم شخصی میخواد منو وسوسه کنه من 50000 تومن این دوستو بهش ندم بنده بیام بگم که من 50000 تومن دوستو بهش میدم پنجل کتابم هدیه میکنم به ایشون میدم یه نهارم از ایشون دعوت میکنم از باب تشکر که این پولو در اختیار من گذاشتید اون طرف وقتی این حالت منو ببینه ناامید نمیشه میگه این که علاوه بر اینکه دینشه میده چند کتابم که داره هدیه میده تازه یه نهارم که داره میده تشکرم که داره میکنه. یعنی از من امیدشو قط میکنه میکنه. به ما گفتن در انجام عبادت به واجب تنها اکتفا نکنید یه مقدار به مستحبات بپردازید گاهی پاشید قرآن بخوانید. نماز مستحبی بخوانید. دعاها رو بخونید گاهی ایام سال روزه مستحبی بگیرید شیطان وقتی می شما علاوه بر انجام واجب در مستحبات هم دارید جدیت میکنید امیدشو از شما ممکنه قطع بکنه همچنین در مکروهات میگن اگر شما از گناهان اجتناب میکنید سعی کنید از پاره ای از مکروهات هم اجتناب کنید و بپریزید وقتی شیطان می‌بینه شما جدیتی دارید که از عمل مکروه هم خودتون رو جدا کنید، طمع در شما نمیتونه بکنه. ولی وقتی می‌بینه شما به خود واجبات سهل‌انگاری می‌کنید، میگه خب اینجا روزنه ای امید پیدا میشه. نسبت به این فرد میتونم امید داشته باشم. حالا امام سجاد چی به ما آموزه؟ اللهم انا نعوذ بك ان يطمع ادامش البته تا اینجا و ان يطمع نفسهو فی ازلالنا انطاعتک خدا یا به تو پناه میبرم که نکنه شیطان در نفسش بتونه این امید رو پیدا کنه که مرا از اطاعت تو گمراه بسازه منو منو از اطاعت تو دور کنه خب این پناه بردن به خدا اینه خدا نسبت به اطاعت چی گفته گفته باجبات تو انجام بده بگم چاش گفته میتونی مستحب انجام بده بگم چاش میتونی از هم اجتناب کن به اندازهای که توانداری چشم و لذا امام اسکری علیه السلام فرمودند نشانه شیعه بودن چند چیزه پنج چیز رو حضرت فرمودند یکی از این پنج چیز فرمودند مقید شدن به نوافل یومیه نافله صبح، نافله ظهر، نافله عصر، نافله مغرب، نماز غفیله، نافله اشعه، یازده رکعت نماز، نافله شب و نصف شب. میگه یکی از نشانه های شیع بودن من اینه که به این نوافل حساسیت نشون بدن. حالا البته ممکنه زندگی های امروزه ما به گونه ای باشد که به همه این نوافل گاهی شرایط زمانی و فرصت ها اجازه نده و ایجاب نکنه بسیار خوب اما به مقداری که میتونیم چی مثلا نافله صبح دو رکت قبل از اذان صبح منی که به اندازه دو رکعت میتونم نماز بخونم خود دو رکت قبلش نافله صبح بخونم نماز قفله دو رکعت بین نماز مغرب و عشاء این که خیلی وقت نمیگیره دو رکت نماز نشسته نافله عشاء بعد از نماز عشاء میشه خون از این مقدار کم شروع کنم ولی به این معنا که شیطان تو می‌خوای در من نزغ ایجاد کنی؟ تو میخوای در من وسوسه ایجاد کنی؟ میخوای منو از توفیق عبادت باز بداری؟ من عمدن برخی از این مستحبات رو مقید میشم انجام میدم تا بدونی که من نسبت به طاعت حساسیت دارم این راهی میشود پناه بردن به خدا یعنی خدایا اومدم اونی که تو دستور دادی اونو میگیرم مثل این که مثلا میگه این توفنگ رو بد دادم بگی با این تفنگ پلنگ دور کن میگه این, این عبادت رو برات بران. این دستورات دینی رو برات گذاشتم با این دستورات شیطان رو دور کن و در ادامش ان الله که جلسه بعد با هم پی میگیریم و امتحان ناب به مأسیتک. اگر اطاعت تو باعث میشه که شیطان نتواند در من نفوذ کند معصیت تو باعث میشه که شیطان منو خارو و ضعیف بکنه اینو ان در جلسه بعد پی خواهیم گرفت و السلام علیکم